داستان کتریه سهرامیز زمانهای قدیم بالای کوهستانهای سرزمین ژاپن پیرمردی تو کلبه کوچیک خودش زندگی میکرد. پیرمرد به کلبه حسیری خودش و دیوارهای کاغذی زیبای اون میبالید چون این دیوارها تو فصل گرما داخل کلبه رو خونک نگه میداشتن و بوی گلوگیا هم فضای کلبه رو اطراگیم میکرد. یه روز که پیرمرد از پنجره کلبهش کوها رو تماشا کرد، یه دفعه از اتاق پشتی کلبش صدای تلخ‌تلخ شنید. وقتی سرش رو چرخون، گوشه اتاق یه کتری آهنی رنگ و رو رفته‌ای رو دید که انگار سالیان سال رنگ آفتاب رو به خودش ندیده بود. اینکه کتری آهنی چجوری یه از کلبه پیرمرد سر در آورده بود، برای خودش یه معمایی بود. وقتی پیرمرد اون رو برانداز کرد، کتری از هر نظر سالم و بی نخص بود. به خاطر همین اون تمیزش کرد و توی آشپزخونش گذاشت. پیرمرد لبخندی زد و با خودش گفت: این کتری برام شانس میاره. اگه اون رو بفروشم، قیمت خوب براش پرداخت میکنن. اما بهتره اون رو دم دستم داشته باشم چون کتری قبلیم خیلی کوه است و دیگه قابل استفاده نیست. به خاطر همین پیرمرد کتری خودش رو از روی اجاق برداشت و کتری تازه رو پر از آب کرد و روی اجاق گذاشت. آب کتری تازه شروع به گرم شدن کرده بود که اتفاق عجیبی افتاد. پیرمرد فکر کرد داره خواب می‌بینه. اول دسته کتری شکلی سر شد. بعد دهانه اون تبدیل به یه دوم شد. و بعد هم از زیر بدنش چهار تا پنجه بیرون اومد. تو مدت چند دقیقه کتری دیگه اون کتری سابق نبود. تبدیل به یه روباه شده بود. روباه از روی اجاق پایین پرید و مثل یه بچه گربه اطراف اتاق شروع به دویدن کرد. از دیوارا و سخف بالا می رفت. پیر مرد بیچاره که نگران به هم ریخته شدن اتاقش بود به ناچار از همسایش کمک خواست. اونا بالاخره تونستن با هم روباه رو بگیرن. و توی صندوقچه چوبی زندانیش کنن. بعد پیرمرد و همسایش برای رها شدن از شر این روبا شروع به با همدیگه دیگه کردن. آخرش هم به این نتیجه رسیدن که اونو بفروشن. اونو به سربچه که از جله خونشون میزش رو صدا کردند و ازش خواستن که کاسب اون ناحیه که اسمش جیمو بود رو صدا بزنه. وقتی جیمو اومد پیرمرد به اون گفت که میخواد از شر یه چیزی خلاص بشه. اون وقت صندوقچه چوبی رو بلند کرد تا روباه رو به جیمو نشون بده. اما میدونید چی شده بود؟ توی صندوقچه هیچی به جزی کتری نبود. پیرمرد خیلی تعجب کرد. اون روی اجاق همه چیز رو به چشم خودش دیده بود. به خاطر همین دیگه نمیخواست اون کتری عجیب و غریب رو نگه داره. بعد از کلی چونه زدن پیرمرد کتری رو به جیمو فروخت. و جیما هم بعد از گرفتن کتری از خونه پیرمرد خارج شد. هنوز جیما از خونه پیرمرد خیلی فاصله نگرفته بود که احساس کرد که کتری سنگینتر و سنگینتر میشه. تا به خونش برسه دیگه حمل کردن اون خستهش کرده بود. توی خونش اون رو توی گوشه از اتاقش پرتاب کرد و دیگه هم سراغ اون نرفت. نیمه های شب جیما از گوشه اتاق، یعنی درست همون جایی که کتری رو گذاشته بود صدای طلقت رو شنید از سر جاش بلند شد تا ببینه چه خبر شده اما گوشه اتاقش دیگه خبری از کتری نبود جیما فایک میکرد داره خواب میبینه و دوباره به خواب سنگینی فرو رفت ولی یه بار دیگه به خاطر سر و صدایی که از گوشه اتاق شنیده بود از خواب پرید گوشه اتاق زیر نور چراغ به جای کتری یه روباهی رو دید که دور خودش میچرخید و شیطنت میکرد. بعد هم روباه به طرف ایوون دوید و اونجا خوشحال و شاد برای خودش چند بار پشتک زد. جیمو از دست شیطنت های روباه پاک کلافه شده بود. دیگه نمیدونست باید چیکار کنه. نزدگی صبح بود که جیمو تونست چند ساعتی رو بخوابه. اما وقتی دوباره از خواب بیدار شد، از روباه خبری نبود و گوشه اتاق همون کتری رو دید که شب قبل اونجا گذاشته بود جیمو بعد از مرتب کردن خونش به خونه همسایه دیوار به دیوارش رفت تا ماجرای دیشب رو براش تعریف کنه مرد همسایه به دقت به حرفهای جیمو گوش میداد و برخلاف جیمو هیچ نوع حالت تعجبی هم تو چهره مرد همسایه دیده نمیشد. چون اون تو دوره نوجوانیش چیزهایی رو درباره وجود یک کتری سهرامیز شنیده بود. مرد همسایه بعد شنیدن حرفای جیمو بهش گفت همراه روباهت به سفر برو و اون رو به همه نشون بده. مطمئن باش که ثروتمند میشی. اما قبل از آغاز سفرت باید موافقت روباهت رو هم جلب کنی. در زم. برای اینکه روباه با دیدن مردم وحشت زده نشه، باید مراسم مخصوص ورد و دعا را هم انجام بدی. جیمو از مرد همسایه تشکر کرد و همه راه رو که مرد همسایه بهش گفته بود رو انجام داد. موافقت روباه رو هم به دست آورده بود. براش یه اتاقک ساخت و سردر اون اتاقک نوشت، که از مردم دعوت میشه تا شاهد شگفت‌آورترین تغییر ماهیت تو تاریخ باشن. جمعیت زیادی از مردم جمع شده بودن. اول کتری دست به دست گشت. به مردم فرصت داده شد تا از هر نظری بیان کتری رو بازبینی کنند و نگاه کنند و مطمئن بشن که هیچ دوز و کلکی در کار نیست. بعد هم جیمو کتری رو تو دستش گرفت و روی سکو محل نمایش ایستاد. جیمو با دست به کتری اشاره کرد و گفت فورنگ روباه شو. توی چشم به هم زدن دسته کتری تبدیل به سر شد. دهنه اون شکل دوم شد و از طرف این بدن هم چهار تا پا بیرون اومد. بعد هم جیمو به روباه اشاره کرد و گفت حالا برقص روباه شروع به رقصیدن کرد. مردم انقدر به وجد اومده بودن که خودشون هم همراه روباه شروع به رقصیدن کردند. روباه با انواع حرکات نمایشی به رقص خودش ادامه میداد. و اگه جیمو به مردم نمیگفت که روباهش خسته شده، و اگه در اتاق نمایش رو نمیبست، مردم تا صبح هم دست از رقصیدن نمی داشتن. هر روز که میگذشت حجوم جمعیت زیادی برای تماشای رقص دوباره و حرکات عجیب و غریب روباه بیشتر میشد و همونطوری که همسایه جیمو پیشبینی کرده بود، اون ثروتمندترین مرد اون منطقه شده بود. اما جیما هنوز احساس خوشحالی نمیکرد، چون ثروتی رو که نصیبش شده بود، مدیون کسی میدونست که کتری رو ازش خریده بود. به خاطر همین یه روز صبح صد سکه طلا توی کتری گذاشت و اون روز دیگه بغلش و به طرف خونه فروشنده یه کتری به راه افتاد. وقتی جیما با فروشنده یه کتری روبرو شد، بهش گفت: من دیگه به این کتری احتیاجی ندارم. چون به خاطر این کتری عجیب و غریب و جادویی، کلی ثروت به دست آوردم. حالا هم اون رو به تو که صاحب استیش هستی میدم. توی کتری 100 تا سکه طلا گذاشتم و خواهش میکنم که این سکه ها رو به عنوان کرایه چند روزی که کتری پیش من بود قبول کنی. صاحب اصلی کتری از جیمو تشکر کرد و بهش گفت: افراد درستکاری مثل تو شاید خیلی کم پیدا بشه. به هر حال اون کتری برای هر دوی اونها ثروت و خوشبختی به بار آورد و تا زمان مرگشون در نهایت آرامش زندگی کردن و مردم هم همیشه به اونها بادیده احترام نگاه میکردند. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صی نشانی کانال تلگرامی، T نقط می/ مهران دوستی، T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 .blackfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی